رادیو فیلم دادشاه نویسنده و کارگردان حبیب کاوش بازیگران سعید راد جعفر والی. علی محزون آهو خردمند زندیاد خسرو شکیبایی حسن زندی جمشید هاشمپور سیروس گرجستانی عنایت شفیعی سعید امیر سلیمانی یاد احمد آغالو سرپرست گویندگان ناصر تهماس موسیقی متن فریدون شهبازیان تهیه کننده حبیب کاوش لغم دادشاه به کسی داده می شود که از شاه داد ستانده باشد و یا به گونه شاه را به داد آورده باشد فرهنگ کوهن بلوچ جهان خارهی که امروز شیطان بزرگ نام گرفته است از خاکستر ویرانه های جنگ جهانی دوم برخاست تا جهان چهره واقعی این شیطان را بشناسد دیر زمانی نگذشت اما در همین مدت او ماسک هایی به چهره زد تا امیدی در دلهای زود باوران بارور کند از جمله این ماسک ها تره مارشال بود در ظاهر برای کمک به مردم فقیر کشورهای کوچک جنگ زده و در حقیقت برای به زیر سلطه بردن آنها اصل چهارم طرح مارشال نصیب کشور مصیبت زده و اشغال شده ما شد که تازه از زیر بار بیست سال دیکتاتوری رضاخان کمر راست کرده بود پس در همان حال که در مرکز با شادمانی مقدم کارگزاران اصل چهار را پذیرا شدند مردم مسلمان گوش و کنار ایران می دیدند که مأموران شیطان بزرگ نه برای عمران و آبادی و کمک، بلکه برای جستجو و قارت منابع آنها آمدند، چون این بود که کسانی که به مبارزه با حکومت وابسته در کوه و دشت داشتند سینه سپر کردند. دادشاه یکی از اینان بود، یاقی بود و ماجراجو، شناخت روشنی از امپریالیسم نداشت، اما اوضاع اسفبار ایران که میخواست از زیر سلطه انگلستان به وابستگی به تن تندهد شرایط نامساعد حاکم بر جامعه و ظلم و ستمی که بر مردم بخشهای دور و فراموش شده میرفت او را به مقاومت وامی داشت دادشاه بهترین نبود اما یکی از نمونه ها بود فقط همین پس شایسته است این فیلم به مردمی هدیه شود که به برکت وحدت خود و یک رهبری درخشان سرانجام شیطان بزرگ را از خانه خود راندند و نیز هدیه شود بر همه آنانی که هنوز در راه از پا درآوردن آن شیطان می رزمند. بیابانی خشک و آب و علف چوپانی بلوچ روی زمین با ریش کمی بلند و تحسیبی نشسته بزغالهی توی بقلشه داره پای آسیب دیده اونو باند پیچی میکنه مادر بزغاله هم جلوی اون راه میره سگ گله کنار چوپان روی زمین نشسته کار چوپان تمام شده بزغاله رو رها می هم با پای لنگ شروع به دویدن چوپان خوشحاله بزغاله جست و خیزی میکنه و دوباره به آغوش چوپان خندان برمیگرده چوپان دوباره بزغاله رو بغل میکنه از سوی یک سیاه و رنگ رو رفته مقداری شیر توی مشتش میریزه سر بزغاله رو به دستاش نزدیک میکنه بزغاله هم شیر میخوره و چوپان از کار خودش راضی. یکی از بوزهای چوپانو با تیر میزنه چوپان نگرانه یکی دیگه سگ گله فرار میکنه یکی دیگه یکی از زبون بسته ها روی زمین جون میده چوپان خودشو کشان کشان به یکی از اونها میرسونه تیر اندازی ادامه داره چوپان باز خودشو بالای سر لاشه خونه یه بره میرسونه خیلی ترسیده و ناراحته بوزغاله هم تیر میخواه به هنوز تیراندازی در بیابان و ها ادامه داره. ولی چوبان کسی رو نمیده. چوب دستش رو برمیداره. عصبی چرخی دور خودش میزنه و پای لاشی حیرونا میفته. ناگهان از دوردست پنج سوار نمایان میشن که توجه چوپان رو جلب میکنه. چوپان با گیز به اونها که رفته رفته نزدیک میشن نگاه میکنه. سه تا از اونها با دستاری روی پوشوندن و هر پنج نفر مسلح تقریبا نزدیک شدن چوبان دوباره چوب دستشو بر میداره و عصبی سمت سواران تازه رسیده میدون چوب دست رو تابی میده و به طرف یکی از سواران پرتاب میکنه که سوار با تفنگش مانع چوب دست میشه چطورها واکنش نشون نشونیدن و سوارها اونا رو کنترل میکنه شطرسوار ها رفته رفته چوپان عصبی که سنگی از و زمین برمیداره رو دوره میکنه دورش می‌چرخند و از روی لاشه احشام چوپان عبور میکنه چوپان مستعصل و, و واج به اونها نگاه میکنه تا اینکه از حرکت میستن و یکی از اونها که سویل بلندی داره به حرف میکنه از کهی تالا سر خود شدی؟ حالا یا دوست من من یاقی به نجاتت خبرشو حتما گرفته چوپان جوابی نداره یکی از روی پوشیدگان به دیگری اشاره میکنه اون هم اشاره رو گرفته و تنابی رو دور پاهای چوپان بی نوا و چوپان به زمین نفته با فرمان مرد سبیل کلوفت شطور حرکت میکنه و چوپان روی خارها و سنگهای تفدیده بیابان کشیده میشه سوارها هیچ اعتناعی به ناله های چوپان ندارن و آرام به راه خودشون ادامه مرد چوپان با پاشنهای ترک خورده دمر روی خاک ترک ترک کبیر افتاده مردی وسط آبادی بر دمامی که گردنش آویخته میکوبه و مردم خبر ها مردم گروه گروه به سمت میدان شهر برین دو مأمور حکومتی مسلح یعقوب رو کشون کشون به محل اعدام میبرن. مردم یکی یکی از جا بلند میشن. دو سه پیرمرد که اونو رو با هم صحبت می کردن. حرکتشون خیلی ادروس از چی بار کشینه. افت پروار سردار دورانی رو تالوخ دادشا و دارا دستش کرده. جورجی همچنان مشغول و مردم به سمت میدان شهر در میدان شهر مردم همه ساکتن و سردار دورانی سخن رانی کرد. در شیبه بدم که تو همه بلوچستان زربالمسل بشه. اون یاغی سرگردانه خوب در سوارتون میشه. از این به بعد اگه کسی با دوشمار یاغی همدل بشه میره بالای دار. حساب اون مرتیکه خرو که سر خود رمادار شده بود، کف دستش گذاشتم. تا دیگه بلوچی فقط خبرچینی تو کار سردار دورانی تو کلهش نیافته. حالا این برادر نمک به هم به سزاش میرسونیم تا تکلیف همه بلوچا با دوست محمد یاقی معلوم بشه شوونه منه گوشت و استخونشو کلاغ زده از برکت سر من داره اون وقت دوست محمد یاقی میشوه از مال من براش میتاسته خیال میکنه مال پدرشه آ چیه گمون نرا شي آخر عاقبت این نصیبت بشه حالا اون یاقی سر گردن بیاد نجاتت بده <تصفح> آگاه وقت تنگ یعقوب و دفن کشید جاشی که ظاهرا خودشم دلخوش دل خوش از حکومت نداره مردانی روی پوشیده رو بین جمعیت می‌بینه یاران دوست محمد خوشحال میشه مردان دوست محمد بین جمعیت پخش میشن فقط جای فرار است هیچ راهی ها شیر و ری شه خودت می‌زنی اگه امریک های یا بخواد این خاک لعنتی یک ترم خرج شما جدا گشته ها امنیت میخواد با این خریدی که شما ها میکنین وجه مغز خل خوردن که بیان تو سرزمین یاقی یا خدمت کنم مام که می بینین آزوق شاندارمری و اصد چهتیار می به خاطر شما بدبختا نه به خاطر خدا. به کلامم گوش بدی. پک و خیالای خام تو کلتون نیفته. این دار همیشه بر با. خبرچین است؟ این دارم اینجا. هست. دیگه مدارا کردن با شما بس اون یه سر گردنم. اگه جرأت داره از کومیت پایین ما بهش نشون بدم. مردان دوست محمد اول از همه نگهبان بالای کلبر میزنند. سردار دورانی ترسیده فرار میکنه شوتورها رم میکنن مردان مبارز اسلحه معمولینو میگیرن و اونا رو وادار به تسلیم میکنن یعقوب از پای چوبه فرار میکنه مردم پراکنده میشن پیرمردی به اوزای یعقوب رسیدگی میکنه اینان کار از دست معمولین در رفته هر کسی به هر گونهی که میتونه زربهی به مع میکنه. مردم در میدان شهر جمع هستند. اون آشوب حالا تمام شده و همه آرام آمدن دوست محمد تفنگ به دست و سردار دورانی را تماشا میکنن یاران دوست محمد هم انبار منزل دورانی را از گندم خالی کردند. بار شطرها کردن و به میان مردم اومن. دست بزنه جن ما رو برای گشون شاه خریدم بندما معاله اینست چرا انقدر ظلم میکنی دوست محمد ظلم من ظلم دارم یا تو که قوت پلوچ را انبار میکنی من ظلم دارم یا تو که بروش از گشنگی میمیره و یک دانه گندم نمیدیشان بگید بگید که چرفتاری با تون دارم دوست محمد به مردم نگاهی میکنه همه سر به زیر میندزن که چیزی نگرد در واقع حرفشون معلومه دورانی جا خورده دوست محمد جواب خودشو گرفته به یارانش اشاره میکنه که وقت اعدام دورانی دورانی وحشت زده نگاه میکنه دو مرد مبارز تفنگ به دست دورانی رو پای چوبه دار میبرن و همه در سکوت نگاه میکنن دورانی داره ذره ترک میشه پیرمردی از یاران دوست محمد به اون نزدیک میشه و بر تفنگش تکیه میکنه زبان تامر گزی مالم و از جانم چی میخوای؟ جانت ما نمیخوایم مردم میخوایم به حقی چشم حسود کو. پیرزنی بازوبندی بر بازوی دوست محمد میبنده و دوست محمد مهربانانه به اون نگاه میکنه پیرزن یاران دوست محمد با اشاره سر به همدیگه میگن که کار را باید تمام کرد پاهای دورانی را میبندن دوست محمد بهش نگاه میکنه حرفی داری بگویی و درانی در سکوت به یعقوب و مردم دیگه نگاه میکنه حرفی نیست دوست محمد اشاره میکنه و دورانی بالای دار مره دست و پا میزنه و تعدادی از مردان بلوچ با تنابی به هم بسته شدن. اونا توی پاسگاه در حضور سرکار ریاهی که سبیل و سر بیموی داره ایستادن. حالا دیگه برای خودتون آدم شدین و سردار درانی رو که تو این خاک که لعنتی چشم و چراغ حکومت بود دار میزنین؟ عرف بزن، عرف بزن، عرف بزن عرف بزن بزن کجا یکی از اونها کشیده ای میخوره. دی جون دختران کارت بس داد یه کشیده ای دیگه ما بلوچی... نمی دونیم. بلوچیم نمیدونیم به تک تک مردان نگاه ما بلوچیم نمیدونیم ما بلوچیم نمیدونیم ما بلوچیم نمیدونیم سمت یکی از مردان میانسال میاد و از چشمات پیداست که جاشو میدونی عارف بزن محل دوست محمد یاقی رو بگین و خودتونو خلاص کنین یادت رفته که سردار درانی سر دوتا قارش که به گرگ داده بودی بهم به گفته بود بزارمت سینه ی دیوار خاطرت رفته که پادر میونی کردم و جونتو نجات دادم حالا به دوست محمد یاقی فشنگ میرسونی؟ حس شرالله علیت هات بزن ده بگو کاشاست ده مغار بیاین بی شرما شما دیگه چجوری بایاستین می دیدم همینجا دیوارونتون کنن اون یاغی اون دوشمان محمدی گردن زنم اگه ستاره بشه وبا آسمون بره میکشمش پایین بعد از این با خود من طرفه با من دوش محمد به همراه یارانش که همگی مسلح هستند پای پیاده راه می‌ندند یعقوب هم با صورت زخمی همراه هست چی میگید داداش؟ میریم کورنگ کورنگ هم از جاده بنپور پرته هم به آب نزدیکه تو چرا ساکتی امو تو که تمام کوههای بلوچستان را زیر پای گذاشتی نقشه ای تو کلا بود پو نگیره هاو آه... کورنگ که میگویی صحرای چشمه ایام داره چند دست آب داره صحرای کورید مشد میشه دریا موج میزنه اگرم خوشون دست ما بکنه تو همون شنای صحرا میچنگیم و سر شنا همونجا زیر شنا میکنیم کنیم نمیذاری به نفرشان درن علانجا <تصح> اسم خودت کافیه کمی ها رو زهره ترک کنه <تصح> از داره به تو میگن پلنگ بسنو سال همین جما بوده که زده به کو دو سال هم در دسته عبدالمجید خان یاقی بوده هموقادر زخم نه گوله به تن داره آ عمو قادر ها عبدالمجید خانو میگم آه آه. اگه یه شب خونه کسی رو نمیریخ شب خوابش نمیورد نمی <تصفح> کوله شو بود که اومدم و جزو شما شدم اگه از خوف دادشان نرفته بود نامه بگیره خودم خونشام میریختم <تصفح> و اونها زیر آفتاب سوزان به راهشون ادامه میده عمو قادر حواسش به اطراف هست دوست محمد یا همون دادشاه و یارانش در قسمتی از کوه استراحت میکنن که دو نفر با نگرانی به اونها نزدیک میشن دادشاه دادشاه سود باش دادشاه مازرای خدا سود باش مونده نباشین چحال چه, چه خبر امنیه هاروزگار همه رو سیاکردن مثل قجار ریختن تو دهات و جوی خون را رو انداختم رو آتیش دادن جوونا رو بردن به حف عجله کن دادشاه تو به له عجله کن تا چ ها بعدی رم نکرد حیفون ایی زون ما سر هم کردم زندگی ما رو نفت مالمان ر دامان نفت وچهامار رفت یه کاری بکن امید ما توی شای شاید ده در آتیش میسوزه و مردم این طرف اون طرف میدهد خیمه ها سوخته و مردم سعی میکنن به هم کمک کنه مردی با دست روی آتش خاک میریزه بقیه هم به اون کمک میکنه مردها بچه ها را از توی خیمه های آتش گرفته نجات میدن بعضی از احشام توی آتیش میسوزن و صاحبانشون گریان بالای سرشونند دادشاه و یارانش به ده سوخت نزدیک شدند و وضع اصفبار اونها رو نیمی از افراد دادشاه به طرف ده سوخته میره مردی که مات روی زمین افتاده رو از جا بلند میکنه دادشاه عصبی و مسمم به بقایای چادر و کپرها نگاه میکنه مردی بچه خودشو به بغل خودش رو به دادشاه میرسونه تن تن بردن. باشین برفی. یک نفرشانم نباید از دستمون در برود. چی داری میگی؟ خب با این کار جونمون از دست میدی. مگه ما میتونیم با اونا بجنگیم؟ با این چندتا تا فشنگی ما داریم مگه میتونیم بشن که امنی ها بریم؟ جونمون تو این کار میدی؟ تو دشت باز که نمیشه جنگید. هنوز زوده که ما تو را از دست بدی. اگر دیدارمون به قیامتم بیفته داداش من با تو میام. هر یاقیه که پاش به اون دشت رسیده کارش تمام شده از اونا عبرت بگیر زنتم به خدا بسپار اگر خوفی که از تو دارن میگذار زخمی به اون بزنم در شهر در یک قهل خود چوب داده که امنیه ها زن دادشاه به چنگ انداختن و بردن به محکمه تو ده دادشاه نه به پیر رحم هم نه به زن و بچه هرچی هم دم دید بود تا اونجایی که تونستن بردن بقیگرم آتیس دادن امنیه ها روی قجر و رو سپید کردن جوی خون را انداخت خونه به ناحق ریخته شده نمیخوابه دادشاه که منو تو نیست زنش رو از دهن اجداهام که شده بیرون میاره دادشاه یه تنه صد تا دولتی رو حریفه شما نشناختینش آفه دادشاه مگه میذاره زنشون رو تو مردی غریبه عط... دستاری بر سر و بخچه بر پشت در آستانه در قهوه خونه قرار قدمت رو چشم دین الله اکبر شو. دادشاه کمی دور از یاران نکه کوه نماز میخونه توفنگش در کنارشه به تخت سنگی تکیه داده یاران پایین تر دور آتش نشستن اونو در حال ادت می بینه همقادر یه حال خاصی داره نه دادشا هر وقت که خیال بزرگی داره میره بالای کوه تک و تنها با خدای خودش رازنیاز نیاز میکنه همه سکوت میکنن نماز دادشا تموم شده و از دور نگاهی به یاران میکنه از جا برخواسته تفنگش رو برمیداره و از کوه سرازیر میشه به طرف همرزمانش هم همرزما با دیدن دادشاه از جا بر می خیزن. همه سلا بر برمیدارن دادچ راه میفته و بقیه پشت سرش پاسگاه ژانداررمری بنوک در دل بیابان دادچ و دستش دورتر در پی تدارک نقشه ای هستند سا چپی بپوشید باید رد پاهامان گولشون بزنه. که چی به شاخه؟ با وجود این همه پای افزارهای خودشون رو به دستور دادچ برعکس بر ولی. چطور میشه؟ از خودش بپید. آخرین نفر هم پای رو بر عکسشه. مأمورین جلوی پاسگاه و بر پشت بام نگهبانی میدن پرچم ایران با علامت شیر و خورشید بر پشت بام پاسگاه ام قادر از پشت بوتهخاری به پشت بوتهخار دیگه میخزه دیگران درازکش ها رو نشونه رفتن و آماده دستورن. همه چشم به دادشاه دارن که خودش هم روی زمین درازکش نگهبان رو نشونه رفته با شلی که دادشاه و مرگ نگهبان دستور حمله صادر شده مبارزا تیراندازی رو شروع میکنه. مأمورین پناه میگیرند تابلوی پاسگاه ژاندارمری با شلی که یکی از نفرات دادشاه به زمین مییفته دو از معمورا رو با تیر میزنن شیشهای پاسگاه مورد اصابت گلوله قرار میگیره مأمورا که جای اونها رو فهمیدن تیراندازی رو شروع میکنند یاران دادشاه گلوله توی اسرح میزنند لحظه مأمورین و لحظه یاقیها تیراندازی میکنن. سرکار ریاهی لحظهی سر بلند میکنه و کشته شدن معمولینشون می بینه دادشاه هم اونو می بینه اتاق بازداشت همسرشون می بینه. با یک گلوله قفل در رو در باز میشه و همسر دادشاه بیرون می شلیک نکنین همسر دادشاه سراغ سرباز کشته شده میره تفنگش بر می ده. یکی از مأمورا از پشت سنگر قصد داره اونو بزنه که دادشاه زودتر حلاکشو میکنه نفرات دیگه هم که در بازداشت بودن از اتاق بیرون میان و فرار میکنند. سرکاریاهی به طرف اونا تیر میندازه. همه های فراری دراز میکشن. اما قادر با حرکتی آکروباتیک به کمک زندانیان ها میره. سرکاریاهی به طرفش تیر میندازه. دادشاه حمایتش در پناه گلوله های مر، رو به افراد برسونید. داتشاه هم دوان دوون به کمک اونها میره. سرکاریاهی میبینه تیراندازی میکنه و داتشاه پشت بوتخای میگذره و سنگر میگیره. در دستشون هدف بگیریم به طرف امو قادر تیر میبزن امو قادر روی زمین میفته زندانی هم روی زمین دراز میکشن زنی تنها روی تخت سنگی نشسته که از دور مردی سوار بر اسب بگیر خوشحال بلند میشه و برای اون دست دستکون میده مرد از اسب پیاده شده و زن به طرفش میده ولی بردرم دادشان منو را یکی چون کرده هنوز که خورست همتونی راستی یه کسی اومده که تکرشم نمیتونی با کنی من میشه سم نهیچ سهب داشته باش میبینیش سهب داشته باش همون رستم نابینا شنبه همون تازه وارد و بخشوک در کنار هم نشست نگفتی این چند وقت کجا بودی شنبه سال برش از دستم در رفتم به گمانم دوازده سال چیزی بیشترک میشه پیرسی شنبه پیرسی خیال کردیم و و هوا پریدیم ما هر جا باشیم زیر سایه امورستم دادشا خیلی هوا تو چه خبر برای بردرم دادشا داری نازبی بی بی خبر نیستم پرسون پرسون آمدم هم پای دادشا به جنگم آی نازبی خیره یا شهر بگو نازبی بیبی بگو یک کلام حرف که این همه معتدی نداره سرکر مودی خبر آورده که تمام قشون ایران شهر به جنگ دادشاه میان ماشینای نظامی در جاده نمایان میشه یه جیب و پشت سرش یه کامیون نظامی کامیون از سربازه یک نظامی مافق استوار ریاهی توی جیپ نقشه رو نگاه میکنه ریاهیم هم دستش مردی با عینک گرد و ریشی بلند و دستاری بر سر و دندانهای یکی در میان هم پشت سرشون نشسته چنام با این که پنج تا دا نجحبان داشتم نفهمیدم این وحشی ها چه جوری ریختن و زدن و از کدوم برم در رفتن. جناب سربان به جمونم چه میشدن می نه پدرجان ده تا اگه می شدن کجا رفتنشون هم از من بپرس؟ اینا سواساشونو چپکی پوشیدن که تو خیال کنی به دشت رفتن اینا اگه رفته باشنم تو کوه من ردشونو میزنم؟ نه پدر جان این حقه ها دیگه برای امورت زن کوه نشده جناب سرمان قادری رو سنگ و تو آبم اگه را و من ردشونو میزنم به من میگن امورت زن زن من مرده تو زنده زیر خاک اگه رفته باشن درشو میارم سرکار یهی بله با سربازایت با ما حجت کنید اگه همشونم تو بیابونا تلف بشن تا دوست ممد یایی رو به چنگ نیاریم برگشت نداریم جیپ نظامی در کنار کپری میسته و متاقبون کامیون سربازا مرد توی کپر با هم صحبت میکنه خبر میرسون خبر اومده که از توچنگ هزار تا امنیه زنه شو در ورده امن دنا سلامت باشین میگم که این دوست محمد یاغی از این ورا گذر نکرد ما بلوچیم نمیدونیم نمیدونیم ما دلمون از یاقی خوف نه اگر از این حتا گذر میکردن ما خودمون خبر میدادیم خدا افس جناب سروان ریاهی و زن و یه سرباز به کپر اونها میرزن لانده نباشی رسم عمد یاقی رو ندیدی؟ شنیدم پی قشون میگرده زن به کار خودش ادامه میده. ببین زده چی جواب جناب سروان این دعاتی رو من میشناسم باهاشون بزرگ شدم یه عمر باهاشون بودم سرشونو باید با پنبه برید. اگه باشون در بیفتی فقط میشنوی ما بلوچی نمیدونره این بروچره که من میشناسم تا زور رو تا گردنشون نباشه ماغر نمیاد سروان و عمرد زن میره هم بکنن داد ها سوراخ سرراخش خدا این امنی ها صد تا لشکر هم بفرن دنبالش پیداش نمیکن. بخشی که نازبیبی با کاسه برای بچه های نوجوان آارده گندم می. اماستتم و شنبه هم در کنار هم همچونن نشستم ز هم ورستم تو داره اونا میل داغ به فرو فروکن. کوورت کردن همون سردار دورانی. اما تو جای ما رو بهشون نگفتی این بخشو که اون وقت بچه کوچکی بود خدا رو شد به همشون میرسی بچه بچه هی هی هی هی دادشاه چه کار سماوی این توفنگ و سال هاست دارم یادگار جنگ انگلیسه با همین تفنگ اجنبی کشتم ناقابله ببرش برای دادشاه خدا سلامتت بداره قبول حق خدا پشت پناه داداشا ببخش من ببخش من تو فنگ خوشگلی بدیش ببینم ا ورلا برنوه سی تو میتونی تیراندازی بندازی ولی ایام الشم و جابو فقط ناز بزنی که بچه به بغل نشسته به انگشت به آرد میزنه به فرزندش میذاره میترسم تا نانتیار کنم این طفل خدا از گشنگی هلاك بشه شوهرت ابرو کجاست من این طفل رو همینطوری به امان خدا گذاشته و خودش رفته پی یه دل دوزی دل باپس این طفل بیگنا از گشنگی حلاک بشه من میگم که بیخرجی نذارتت. خدا پشت و پناهت باشه بخشاک <تصفيق> یاران دادشاه در دل اکو. یکی نور میگذر یکی می. ایسا برادر دادشاه پوست گوسفندی رو, رو روی تنابی بینده دادشاه و شنبه هم به جمع اضافه میشن ساره همسر دادشاه تلی هیزم روی سرش میذاره دادشاه بخشید و شمده از آب میرسه سلامت باشی کنده گواتا نندازی تو آتش که دودش قشون را اینجا میکشه ها پس چرا به قشون نمیزنیم دادشاه حمله ما باید موقعی باشه که کویرم کمک ما کنه ولی اگه اینجا ما کردن چی؟ ابراهیم کف کفرده دادشاه و شنبه به حرکت در میاد. ابراهیم ولی اقصری. از کار دادشاه اصلا سردر نمیاره. هیچ کی ساده. دادشاه! مردی با شطور از دور به های دادشاه نزدیک میشه. اما قادر توفنگشو سمت غریبه نشونه میره های ملوچ! کجا میری؟ دادشاه! ها؟ دادشاه ها دادشاه هم به دادشاه پناه آوردم هم چیز ناگابی براش دارم قدمت رو چشم حمدین ببینم چیه وارد چندونه بود به نو تعارف دادشاه دادشاه شنبه و بخشود به کنار ابو قادر خوش اومدی سلامت باشی اگه پی دادشاهی به دادشاه شرمی. چشم و دلم روشن باید ببخشی که نشناختمت خبرات دارم برات از امنی ها که در زیر بام داد بودن و ردزنشون پی رد تو بود قشون از پی امور ردزن از تپهی پایین ردزن لحظه نیسته ریاهی رد پای روی زمین دیده این رد دادشانیست امور ردزن؟ دوستممد بله قربان دوستممد یاقی دست از سرم وردار پدر جانی پای وحشه ببینم هنارت تو گم کردی اون رد زن پس کی رد یا رو میزنی قادری به رد زن نزدیک میشه تحجیل نکن قادری جان اون جونور منو خوب شناخته همه رو وادار کرده روی سنگار را برن اما کور خونده پدرجان تنگ غروب تو چنگت میندازم. ديرمردي به همراه دو جوان مسلح در بیابون راه میپیمایه. کارم خدایی شد سالر من اگ دادشاه و بقیه کمی دیرتر رسیده بودن به دارم کشیده بود سر چی؟ سر خیلی چیزها یکیش بردن همو تارفات و خبر ظلم سردار. قضیه این سفیدی ریش و موی هم سر همون جنگ و سردار دورانی بوده. قدرت خدا نمرد و از اون روز هر چی میگذره موش میشه. ابراهیم از یاران دادشاه با خوشمون کفنگش تمیز حالا چی شده که به رقص اومدی؟ میدونی آیو من مدت خاص که پی همچین روزی هستم چنگ چنگ فردا هوا طوفانیه مناسب جنگه نمیشه با باید با قشون مدارا کرد. آره قشونو دنبالمون میکشونیم حسابی بازیش میدیم بده ببینم دادشاه دوربینو از همرازش میگیره و نگاه فردا توفن که خوابید صدای فریاد اونا رو به خودشون روید همه سلاح‌ها رو آماده می ساره خاک بی آتش مریزه ظاهراً قشون دارن نزدیک میشه. نباید افراد رو درگیر بکنیم باید به ظاهر عقب نشینی کنیم دادشان هم کنیم. نه نه قشون بیخ گوشمون دادشا چرا نباید بچنیم آی ابراهیم خود دار باش قادری دوربین شکاری رو پایید یا حیادتال فرانم از شرا تا اون سر دنیام که شده همینطور تعقیبشون میکنیم اجر کنید بیاین قادری به راه با دستور ریاهی سربازا پشت سر اون بگاه به دره میرسیم دادشاه و شنبه و امو قادر جلو و بقیه پشت سرشون توفان ها همونجا سر میکنیم بعد به قشون میتازیم خوب کاری کردیم که با قشون درگیر نشد آره دادشاه ابراهیم توفنگشو به طرف دادشاه نشون میره بقیه خصد دارن جلوشو بگیرن ابراهیم بال یه قشونی دیوانگی نکن خدا بخش به خود دادشاه واگذار کن ابراهیم اگه دلیلی بیارم که تو از همون وقتا چه دلیلی دادشاه روزها و شبها خونه دل خوردیم که این گله ها رو تو دل دشمن بشونیم حالا خیانتی که تو بین کنی از ظلم امنیه ها بالاتره ابراهیم راست میگه، قفه شو نور محمد خودت دادشاه تو شاهد بودی امنیه ها پدر و مادر و هفتا برادر و و تو کپر زنده زنده به آتیش کشیدن و کبابشون کردم حالا که روز تقاسه باید دار بریم نه مگه چهار تا اموی تو رو امیه ها چرا باید فرار کنیم دادشا چرا باید فرار کنیم کینه دشمن رو دلم مثل کوه سنگینی میکنه دیگه نمیذارم در بریم نمیذارم گلنگدن رو میکشه همه منتظرن بس چرا شلیک نمی ابراهیم ابراهیم دست به ماشه میبره اما تمام وجودش میلرزه شنبه به اون نگاهی می بره. شلیک کن ابراهیم سان دل بشو اما دستان ابراهیم نمی چرا دستات میلرزه ابراهیم با همین دستا می خواهی به بجنگم ها بری؟ ها تیرت خطا میرود عشق در چشمان ابراهیم حلقه میزنه چلیک کن ابراهیم نادم و ناتوان توفنگ به دست زمین میافته چند نفری به طرفش میرن و میگیرنش مامور حکومت مجالش ندید خلام خدا بگیرد آزادش کنید کمی خرقش تنگ باید مجازاتش کنید آه. گفتم که آزادش کنین قطا نکرد که مجازات داشته باشه. ناچاه میره و بقیه پشت سرش. اوهای بلوچستان تا حالا همچین چی به خود ندیده. بلوچستان دیگه. نظامی‌ها همچنان در کوهها پیاده یا هستند. از کوه بالا می‌رن. دیان سنگ های کوه دادشا و بقیه استراحت بر شما امنی ها برادران ما هستید و شنبه می نویسید شماها گناهی ندارین شما وضعیتتان تو این بر بیابان خیلی بیسامانه نگذارین برادر کشی بشه برگردین سر خان زندگیتان اولش شنبه آ بله بنویس از جانب دسته دادشاه به سر دستشون بده خدا بخش تعید میکنه ساره نامه رو از شنبه میگیره و به خدا بخش بده با همون لبادات بهشان علامت بده تفنگی چیزی همراه نبری محکم و قبرا برو دلاور باش خدا بخش بلند می شه و میره خدا بخش به میان قشون که مشغول استراحت و تمیز کردن توفنگ ها هستن اومده. دادشاه از دور داره اونو میبینه. خدا بخش به ریاهی میرسه. سرباز مرخص میشه و خدا بخش به دنبال ریاهی پیش قادری که در حال دیدبانی امیده. قادری نامه را از خدا بخش میگیره. آب دهانش را با توهین خالی میکنه و نامه رو باز میکنه. نگاهی به نامه میکنه. نگاهی به خدا بخش. نامه را مچاله میکنه و پرت میکنه توی صورت خدا بخش. استوار ببرش. او خدا بخش را میبره و به سربازی میسپره و دادشاه از دور نظارهگر این صحنه است و نگران. خدا بخش. هم. همه سرباز ها سلاح به دست خبردار می همه به طرف ریاهیم خدا بخش و ریاهیم دورتر می شن به همه سرباز به صفح می قادری جلوی صفح می دادشاه به افرادش اشاره می و هر کدوم از جایی سر بلند میکنن و آماده یه هم می لحظه یکی از یاوی رو می سر می دوتا دیگه و حالا خودشو در محاصره دسته دادشاه می سربازا سری روی زمین و پشت بوته های خار و تل خاک مخفی میشن تیربار رو آماده میکنن به طرف یاغاتتییر اندازی میکنن اونها هم پشت بوته ها و تلهای خاک پناه می گیرن قشون پیاپی شلیک میکنه دادچ با تک تیر بازوی تیربارچی بارچی رو هدف میگیرن. قادری سینخیز حرکت میکنه. دو تا تیر بغله دادچ ها میخوره عیوب سینهخیز خودش رو به دادچه میرسونه. دادشاه یکی از سربازها رو که میستیم میزنه ریاهیم هم مشغول تیرندازی تکتیر ساره سربازی رو میزنه بخشون کم در کنار برادر دادشاه اینجوری هممون حلاک میشیم های آه آه آه آه آهای ایوب قسشون برن تا حلاک نشیم پرگلولات باید یک امنیارا به خاک ملنازد سربازی فرار کنه که عیسی با پرتاب چاق رو میزندش امور رهزن خودشو پیش دادش می‌رسونه. شرایط می‌کنم. سعی کی باشی. شیر ما در خلاصت امور است. دیگه موندن پیش امنیها خوف دار. یا هی! ادیشن چلاو! چاش! انا قربان. ای ای سالار ما متفشاش. امورت زن میره. شنبه هم سربازی رو میزنه. تیری بخله ریه ای اسابت میکنه. جنگ تن به تن جنگ ریاهی ناراضی اطاعت میکنه یکی از یاقی ها فشنگ تمام میکنه دادشا سربازی دوون دوون خودشو به سربازی دیگه این رسید چه خبر؟ ابراهیم ابراهیم کار به دست بدو سرباز نزدیک میشه. ابراهیم چه خبر؟ سرگرممون میکنن تا خوشنگامون تمام بشه. نه، دیگه کاری از دستشون بر نمیاد. از هم دیگه پرتشون کرده. ابراهیم سینخیز خودشو خودش رو به دو سرباز رسونده. از پشت حمله میکنه و هر دو رو با ضربه چاقو از پا در میاره. شنبه خوشحال میشه دادشاه به طرف سنگران میره. پشت بوته پناه میگیره. نزدیک ابراهیم. یه. سربازی ابراهیم دیده و میخواد بزنه که داتجاه زودتر اون داداش، داداش یارو پریم، ویروس خدا کن، به کلام در جا نیست. سلام بالا بگیر گیر میخوام شکستم یا. <تصفح> داداش لحظه ای می میبینه که سربازا بازها های مهماتی رو که روش USA نوشته شده رو روی همدیگه دیگه ابراهیم ابراهیمو رها میکنه. نشونه میگیره و. جعبه‌های مهمات و سربازا با هم به هوا میره ابراهیم از این کار دادشاه لذت میبره اما این خوشحالی دیری نمیپاید و ابراهیم آخرین نفس رو میکشه قادری با لباس تیکه پاره و صورت زخمی در حضور مافقش ایستاده مافق گزارش رو میخونه بهار بهاره همش بهاره چجوری نتونستیم به فهم این شما رو گول میزنه امکینهی که از دوست محمد یاقی به دل داشتی سمرش همین بود شما افسر نمونه بلوچستان بودید جناب سرهنگ با شناختی که از حیله دشمن به دست آوردم به شرفم سوگند اگه امکانات کافی در اختیارم باشه میتونم یه شب این قائل ننگین رو که به حیثیت ما از بیند ببرم قصم میخورم موافقم چه امکانتی؟ جناب سرنگ اجازه بدید با داتی که به یاغیا یا کمک میرسونم در حکم دشمن حکومت رفتار کنم من اختیارت ها میخوام قربان. نه نه خیلی باید احتیاط کرد با دومه شیر خفت بازی کردن کار خطرناکیه ریاهی و چند سرباز روی زمین افتادن ریاهی لحظه پای شطوری رو در کنار خودش میبینه آرام سر برن میکنه. دسته دسته دادشاهه شنبه هم است در کنارش بخشوک سر ریاهی زخمی شده بلوچ شونو بکشیم دادشاه مگر تو بلوچ نیستی بهشون قوتا بدین را از این رفتار دادشاه متعجب شده اما خوشحال قهوه شهر خداحافظ میگن یه نفرم از خوشون سالم در نرفته <تصفيق> چار پنجتاشونو که خود دادشاه استو تو کویر نجات داده یکیشون همونی بوده که ده دادشاهو با آتیش کشیده و زنش اسیر کرده به نازم, نازم مردانگی دادشاه را تو هنوز قدرت امنیه ها را ندیده یه دلش نمیخواد برادر کشی را بندازه الله یک روز ردش رو کور میکنه اگه ترس دادشا منم به این کنج نشونده بود حالا طرف امنیه رو میگرفتم <تصفيق> اگه حرفت با منه بگم که کسی از ترس دادشا اینجا نیمده پس برای چی پیغام دادشا هنوز به تو نرسیده بود زندگی و ملک و تو ول کردی و اومدی بشه اومدم که خونریزی نشه بقصود کلامش اینه که خون خودش نریزه دیر کردی بخشی دادشاه ما را پی کار واجبی فرستاده بود خب که ایدو خان وعده کرده بود چی شد؟ از روزی که دادشاه سردار دورانی را تو میدون به دار کشیده پاک یه جور دیگه شده من فکر میکنم داره امروز رو فردا میکنه بگمونم این رفیق دادشاه از ما برگشته خب تو چه سر کار مودی. این رئیس هسته چهار با ایدوخان و چند سردار دیگه هم سر و سیری پیدا کرده همین خود کارول دستور داد که ده دادچه رو با تیش سدن برای خط و نشون کشیده گفته که باید اول از همه این وحشیار خفه کارول در کنار استاندار نشسته و با بانش میشه مردم این نگاه میکنه که دارندن از مال فمن مورد که مختلف می از اداره اصل چهار دیدن کردند. همه جا مردم ما را دوست داشتند ما کهشاورزی عرب اقادیان ها رو مکنست کردیم. به ایشان آب بهداشتی داریم. آنجا همه امریکایی ها را دوست داشتند اما اینجا وحشی هستن آد ما را گرفتند و به ها دارند بسیار تأسف دارد کارول که سبیل زردی هم داره. دوربین پایین ولی مطمئن باشید اصل چهار آنها را متمدن می کند. واسدی از جانب قشون نزد دادشاه و گروهش. اما نامه و پول بدو چه فکری تو کله این سرهنگ شماست من این رو که فرششان زمین خدا و قوتشان علف بیابونه به زر میفروشم. برای با آن مرده که اجنبیم که نامش خاطرم نمانده و برای امنیه ها از مملکتش ماشین جنگی و تفنگ میاره بگو نامش رو گلوله کندم ساره و قادر کیف میکنه معمود نام بلند شد و حکیف شدن خواهیم دید کارول در کنار استاندار دست یاش و مرد در فضای سرسبز مشولشیم. ببخشید آی استاندار من حرف شما را درست نفهمیدم. اسم من را روی گلوله کندن یعنی چه؟ تو یاغ یا این حرف یعنی حتما با همون گلوله دشمنو میکشه آقای استاندار، من در ممالک مختلف از این یاقی ها زیاد دیدم. باید گفت خیلی اشتباه کرده اینها باید متمدن بشن اینها تمدن لازم دارند دادشاه از طهی زیاد خودش را از کجا آورده؟ پاسگاه رو غارت میکنه افرادی هم داره که برای شسره قاچاق وارد میکنم آدم کل شقیه نباید از اون غافل شد عوامنش تو تمام دوایر نفوس کردن هر قدمی که علیش برمیداریم زود خبرش میگیره اصل چهار یاوی ها را راحت نمیگذارد اگر بخواهند چیز کنند چی می بین به مقاوم... مقاومت بکنند تره خوبی برایشون داریم شاید کار به اونجا نکشه و بشه بادار به تسلیمش کرد اگه بدون خونریزی قائل خط بشه هم به سود ما و هم به سود بروچاست مثلا فکر ملاقاتشو سرهنگ ولی پور داره قهوه to این اصل چاریا خوب همه جا رو قروغ کرده مردی آی به جوان چشم بره نه. راسته که نزدیکای چاوبهار نفت پیدا شده؟ نفت به چه دردمون میخوره؟ وقتی که ما یه پیاله آب نداریم بخوریم. وقتی نفت باشه طلا هست. وقتی کلا باشه برامون از چابه هم که شده آب تیار میکنن. کوکی به قلیون میذاره. ای بابا نفتم اگر باشه عجنوی تو چراغ خودی. به چی اینو میگه و جرعه چای بیبی و بی بی بخشو که روی تخت سنگی با هم صحبتو. منم با خودیت ببر بخشو. هر چی خاصیه هر کوری تو خاصی منم باهاتم. تو لازمه پیشه باهات بمونم. به موقعش میبرم راهی بشم امشب پیشمون نمیمونی؟ نه باید راهی بشم دادشا به امنی ها قرار داریم میرم سر قرارش. سرهنگ ولی پور تک و تنها در کنار جیپ ارتشی ایستاده و به اطراف نگاه میکنه به مقر دستی دادشا اومده دست دادشا اونو دیدن داداش سرهنگ ولیپوره؟ پوره رو را بگیریم احترامش کنید بیاد. وقتی تنها سازاری نداره ولیپور که کلاهی شکاری و سبیلی سفید داره از تپه بالا اومده و به گروه رسده یکی از افراد گروه پشت سرش قرار ندیره و حالا ولیپور مقابل دادشاه و وقتی گروه هست سلام علیکم سلام گذشت چجوری سرهنگ سلامتی برای چقدم رنج کردی سرهنگ تو که میدانی ما چه میخواهیم از تک تک این آدم ها هم اگر به پرسی میدانند مردمان آواره و بدبخت این ولایت و خراسان و سیستان و نمیدانم هزار جای دیگم میدانم من اینجا اومدم مثل یک برادر به کلامت گوش بدم های کلام ما کلام همه مردم است اونها میخواهند تو که نماینده حکومت و قانون هستی اینقدر ظلم نکنیم مردم میخواهند روزگارشان خوش باشند مردم میخواهند پای اجنبی از بلوچستان بریده شود <تصفيق> اصل چهار رو بگی خوب اونا اگه دوتا هموم و سه تا منبع آبم بسازند باز تو این صحرای جهنمی کلی خدمت شده چرا نمیخوایی قبول کنی اصل چهار به صلاح این مملکته شما بیخود با اونا در افتادین بذارین کارشونو بکنن های سرهنگ از تو آمدی به من درس عجی نبی پرستی بدی؟ اگه عجی نبی خون گرفته یه بله دست از این یک دندگیت بردار بلاخره ما مال یک خاکستیم درد تو برام من خوب میدونم برخلاف خلاف چه شایه شده قضیه از ناموس و اینجور چیزا بالاتر. اما تو با ده تا آدم مگه میتونی کاری بکنی؟ گیرم منم کشتی ست تا مثل منم کشتی با حکومت چه میکنی؟ اونا اگه پاش بیفته تمام این مردم رو با مسلسل درو میکنن ولی اگه دست هر هرچی بخوای بهت میدن قرآن مهر میکنن که در امان باشی همین کلامت؟ یاد نداره، ما گبیات نداری ما ها مسئلی داریم هر مبی و تیدی ما سیل کنه بی دور سیل کنه یعنی الاغ وقتی راه رفتن فقط جلو پاشو می‌بینه ولی شطور همیشه خیلی دورو نگاه میکنه دور باید فکر فرداها رو کرد اگه دادشان بمیره کار تمامی نداره سرهنگ این کوه و دشت بلوچستان هزاران مست داتشاه دیده اما منم به حاکم فضلهم میستم نون و نمک ما حکومت به همین خاطر میده بلاچار منم رو در روت میستم در یک جیپ آمریکایی آمریکایی ها به منطقه داتشاه اومدن راننده ایرانی اونها در حال خوردن مشروبات الکلی از روی نقش نگاه Is so oh, yeah. Are you sure this part of Iran is rich in natural resources? Well, the British have kept their eyes on this part of the country for quite a while, and surely our friends in the State Department haven't sent us here to admire the nature. I think we're approaching a junction. Oh right yeah, injāb epichbichal. I still say we should have come here with some kind of security. I know, look, we're in a deserted village. What can we do? Uh, why don't you? دادشاه ماشین اونها رو میبینه گلولهای در تفنگ میزنه تفنگ و بلا مینه و چرخ ماشین در حال حرکت رو نشون درست به هدف ماشین متوقف میشه سرنشینانش پیاده میشن و پشت ماشین پناه میگیرن زن همراهشون توی ماشین میمونه اونا هم مسلحن یاقیا از دو طرف بمب حمله میکنن کارول شلیک میکنه یاقیا شلیک میکنه کارول تیر کارول خطا میره امو قادر آینه ماشین اومیزه کارول سلاح بزرگتری از زن همراهشون میگیره امو قادر لحظه ای بلند میشه و به طرف اونها میره کارول از فرصت استفاده میکنه و پای قادر میزنه همه به طرف امو قادر میان آمریکایا سوار ماشین میشن و با لاستیک پنچر راه میافت. شنبه پای عم رو با یک تکه پارچه میبندم. درد داری؟ چی میس؟ چی میس؟ تمام تقصیر خودم بود. عمره همشون سر رسیده. فقط زن آمریکایی زنده بود. یاران به دادشاه رسیدن به طرف زن بودن بس هم کاری نداشته باشین هباپیمای جنگی در هوا، ماشین های نظامی وارد منطقه میشه سرهنگ در کنار یک آمریکایی در ماشین تا بانوکرال نشد به یک یایوشی حمله نکرد درسته بانوکرال باید حتما سلم بود ما پول فرستت تا شاید او آزاد شد کامیون ها و جیپ ارتشی پشت سرهندن بخشوک آبی به صورت نازبیبی که افتاده می باشه. تو خودتو کردی کردیم نازبیبی چرا با این حال ناخوش اومدی؟ پیغام آوردم پیغام کشتن اجنبی باعث شده قشون تهران و بکیشون بلوچستان سرکرمودی میگفت مثل مور و ملخ ریختم تو بیابونا دادشاه و بقیه زیر سایه درختان استراحت میکنن که ساره مردی رو چشم بسته پیش اونها میاره ساره مرد رو رها میکنه و میره اسلام علیکم, اسلام علیکم. حالا چشم مرد رو بازگردن میشیم ساره پیش همسر کردن را کن مجبور بودیم چشمت را ببندیم عیبی نداره همین که مرا اینجا آوردن خیلی امان الله می گفت حرف زن آمریکایی رو زدی رسم ما رسم نیست زن به اسیری بگیریم ناچار شدیم هرچه پول میخواید بردارید فقط بانو کارولو بدید ببرم ما زن امریکایی رو به اسیری نگرفتیم که باج بگیریم ترسمان بود که تو بر بیابان تنها بمونه خلاصه یه کلام من را هم به او گفتیم که خاک بلوچستان جای اجنبی نیست و دیگر و ببر برای همانهایی که رو به اجنبی میفروشند زن آمریکایی هم فرشت در همین حالا ببر سرهنگ و بقیه نظامیان بالای سر جسد زن کارول آمدند قتل بانوی محترمی از ایالات متحده آمریکا دنیا را متوجه این منطقه کردند از این به بعد به ادبی نباید یدرا كرد. کنترل شدید جاده ها جده های مارو و خاکی را زیر نظر بگیرید تا نیروی ویژه سریع تر به هدف برسه ما تا زمانی که جلوی کمک رسانی دهاتی ها رو به یاقیان صد نکنیم نتیجه نمیگیریم. هر ده و روستایی که دیده بشه به یاقیا کمک می رسونه باید با خاک یکسان بشه ولی حمله به روستاها جز تخم کین پاشیدن سماری نداره جناب سرهنگ چون افراد ما کاملا تجربه شد دارن اگر جاندرمری بلوچستان قاطعانه با این مسئله برخورد میکرد کار به اینجا نمیکشید. باید جلوی این افتضاح گرفته بشه ولی بلوچ ها کینه شطوری دارن جناب سرهنگ ما این شطورو گردن میزنیم هواپیمای نظامی بر فراز منطقه در جستجوی یاقیه دسته دادشا هواپیما رو دیدن و خودشون رو مخفی میکنه سرهنگ در هواپیما کنار خلبان نشسته هواپیما اوج میکره دادشا و ایسا نیروهای نظامی رو میبینن که از کامیون پیاده میشه ترام به کامل معاصره کنید و منتظر دستور بعدی مجبوریم مقادر جا میبر مجبیم از ایسا اما قادر رو که کول کرده بود روی زمین میذاره. دادشاه در کمی نیروهای های نظ من بذار همین اینجا تافنگ من بذار پهه خیلی نیرو نیروها پشت تخت سنگ ها سنگر می و تیراندازی رو شروع میکنن دسته دادشاه ها از جمله ساره پشت سنگ های کوه پنا می و آماده مبارزه میشن سطفا قادری هم به همه همیلوها اومده ریاهی هم هست هواپیمای سرهنگ مانوری میده و رد میشه تیراندازی دو طرف به هم ادامه داره تیرها یکی پس از دیگری خطا مره قادری چشمش به دره میافته افراد هرچه سریتر گیوار دودی بسازید تنها راه فرارشون دره پشت سرمونه های پسر بله قربان استوار ریاهی بگو از دره پشت خوب محافظت کنه. اما قادر روی تخت سنگ خوابیده ایسان هم در کنمش نشست خوشحال رازی مرد بیا ایسا مال مالتا سالها رفیق روزه جنگم بود اما هیچ وقت روی مزنو کسی اجنبی گله گلیا همین کوه دفن کنی. او سوار یاهی با سربازی صحبت میکند. سرباز سینهخیز حرکت میکند. باید از کمکشی خوشت کاملاً مستقر نفرات به خوبی از اینجا مارگزارت میکنند. خروجی داد. شریتار. شنبه با تختی سربازی رمیزی. سربازها شنیدیم میکنند. بخشوک بعد ساره و دیگر افراد داد چامشلیک میکنه بخشوک بخشوک آه در رای پشت و بپا تیر حسابی مشکلن سروازی نارنجکی پرت میکنه قادری و چند سرباز به طرف دست حمله نمیکنه؟ خدا بخش بالای سر دو جنگی نشسته. ریاهی آروم سینه میره که اندیش. امون بالوچ. بالوچ، امال پناه آوردم. راحت دگره رو براتون باز گذاشتم. زود فرار کنید. بخشوکه. ریاهی برمیگرده. بخشوک باور نکرده. ایسا توی کوه در حرکته که پنج سرباز محاصرش میکنند و با ضربه سرنیزه اونو از پا در میاره. این این سحبر رو نزارده دادشاه دست از تیراندازی میکشه و به طرف همدستش میره قادری آروم از پشت تخت سنگ سر بیرون میاره دادشاه رو در حال دیدن می‌بینه با تفنگش نشونه میره و دادشاه لنگون لنگون خودش رو پشت سنگی بزرگ میرسونه ایوب اون میبینه می‌بینه نازبیبی بیمار بی بی بی در کنار امورستم نابینا دراز کشیده نازبیبی پاشو بخور یک کمی بخور برای سینت خوبه داغ نیست پاشو مادر در که نباشه بخشو که نباشه از مرگ میاد و ناز بی میره مرد میانسال مخالف داتشاه راست در خانه معرکه گرفت و دائم به نگفتم. نگفتم اگر ماشون بخواد یه روزه رد شکر میکنه دیدید حالا همین روزا همشون رو میگیرن و دار میزنن همون اول کار عاقبتشون رو میدونستم مردی که با چند تا دیونه تر از خودش پا شده و زبینا و نخرای منو بین دهاتی ها میکنه مگه شهر هرته خوب حسابشونو رو دستشون گذاشتن دلم خونک شد حالا من میدونم و دهاتی کملا کم لاکم قصد کردن عبدالحمید یادت باشه بعد از نماز صبح فردا به طرف ده حرکت میکن آره خطایی که نکردن حقشون رو گرفتن سزاوارش هسته امورستم زنان به یک دهاتی برسن حالا با این مصیبت چه بکنیم نه دادشاه هرگز نمیمیره نه دادشاه که مرد مردن نیست نه دادشاه رفته و جزء کوههای بلوچستان شده دادشاه اگر بمیره کوهای بلوچستان باید از غم فرو بریزه برید بلندترین قله رو پیدا كنید همون داد نشته چی سرهنگ و جناب سرهنگ نزده که یاقی کیر خورده به امر اعلی حضرت قما تا ختم این قائله ترفیات جانداری لغش شما همه مسئولیتاهون اداره 84 تمام دفاترشو به عنوان اعتراض تعطیل کرده اونا امنیت میخوان وگرنه آمریکا کمکاشو قطع میکنه چرا از بین بلوچانی روی علیه دوست محمد یاقی تشکیل نمیدین اینقدر پول بریزین جلوشون که ما تو مبهوت بشن بدون معطلی همشون رو مسلح کنید حتی تمام اون یاقیایی که خودمون بهشون اما نامه دادیم چرا موضوع رو جدی نگرفتین حیثیت کشور مطرحه خود من در سرکوب قائله آزربایجان همین تاکتیک رو به کار بردم به هر قیمتی که شده باید نابود بشن ما اجازه نمیدیم اشرار امنیت منطقه را به خطر بندازن من به شما دستور میدم مرد به مخالف شکست خورده نشسته و مرد عینتگر به اون مطلک م السلام علیکم <تصفيق> همه از این پیروزی نسبی خوشحالانه میرخسد یکی از نظامی ها به اتفاق جناب سرهنگ مردی سبیل از بنابوش در رفتر و پیش تیمسار تیم تیمسار عبدالمجید خان بیش از پونسد توفنگشی زبته داره تمام کوههای بلوچستان رو زیر پا گذاشته قربان حتی لانه های رو میتونه تک تک نشون بده البته خودشم قبلا یاقی بوده و اما نامه گرفته قربان بسیار خوب همه شنو مسلح کنید از دست دادن ایسا برادر دوست محمد یاقی براشون ضربه سنگینی بوده چون فکر میکنن اسیر شده البته به موقعش از این ضربه استفاده خواهیم کرد طرح بعدی ما به برادر کوچکترشه که در تضعیف اونا بینهایت هایت مثره اطمینان دارم که اونا برای نجات ایسا حتما جلو میان چند سرباز از پشت بام خانه ها عبور میکنن خانه بخشک و میکنن بخشک در حال بالا رفتن از دیواره سربازی تیره به طرفش مینه. جار، در... ساریجار، سرعت... ساریجار. میخواد نکشیدش. شو <تسجا> بخشوک یکی از سربازا رو میزنه. خوشحال بلند میشه و میگه دو سرباز به جلوی پای اموراستان تیراندازی می‌کنه. بخشوک لحظه‌ای نیست. مهمور دو تیر پیاپی پی در شکم بخشوک خالی میکنه زن همسایه به کمک میاد که اونو هم میزنه چند تیر دیگه هم به بخشوک میزنن روی زنی میفته سازشو میخواد برداره که تیر خلاص هم به اون میزنه ساز بخشوک جلوی روی داد شاهه خشم و نفرت در چشمانش حوی دارشت به طرف اعضای گروهش میره ریایی هم در کنار اونهاست و رو به ایوب میگه خیانتش آشکار شد خبرچین قشونه بخشو که این به داغته ای ای زده جان آمریکایی و قاصد و سالار محمد هم اون زده حوث پولای قاصد دیوانش کرده بوده چطوری کشیشون زن و اون قاصدو میجان. دیگه از این همه خبرچینی خسته شده بودم با اینگه ای پولایی که امراش بود منو به وسوسه انداخت میخواستم برم بندر زندگی کنم ولی شما با اون بدگمان شده بودید منم به خاطر همین کشتمش به خاطر ترس کشتمش میش. ایسام کجا به حبس دارن؟ به قرآن خدا نمیدونم. داتش ا. داتش ا. داتش بلنش. ا. لایش بلنش. ایوب پای داتش ا. اما دادشاه پاشو میکشه ریاهی و یه نفر دیگه بلندش میده ازاداری بخشوق و نازبوبه هر یک در تابوتی بر دوش احالی ده حمل میشه ایوب رو به تخت سنگی بزرگ بسته ریاهی و نفر همراهش با گلوله در پیشانی کار ایوب خائم رو تمام میکنه اما مقابل اهالی ده استفاده. نظامیام هنوز توی ده هستن کی به این پیر مرد شطوری قرض میده؟ دیگه وقت ماندن نیست اگر کسی هم رام نیاد خودم تنها دادشاه رو بو میکنم و تو کوها پیداش میکنم دستم هنوز دو دست داره که دادشاه رو یاری کنه دستم؟ اما روستان با گلوله میزنند مردم متواری میشن شخصی با تبر به طرف امنی میره با تیر میزننش همسر و فرزندانش توی سر میزنن یه تیر دیگه توی سرش خالی میکنن شخص دیگهی در گیریه تن به تن داره که بالاخره امنی با سر نیزه میکوشن جناب سرهنگ با زیر دستش صحبت میکنه همه چی آماده است باید از تمام جوان معاصره بشم. شاه عبدالمجید خانم به بفستان سر وقتشون. اطاعت جناب صرنگ. سعی کنین نتونن کوچکترین ارتباطی با دهاتی‌ها پیدا کنن. باید از لحاظ خوراک سخت در مزرعه چربان. تماستونم با من قطع نکنین موفق باشید. اطاعت جناب صرنگ. منتظر دستورات بعدی شما هستیم قربان. جناب صرنگ سوار هواپیما میشه. هواپیما به راه میفته. هواپیما بر فراز منطقه دادشاه، ساره، شنبه و دیگران که در دل کوه مخفی شدن ناگهان به خودشون میان دادشاه محل عبور هواپیما رو نگاه میکنه ساره ترسیده این دیگه چه بلایی بود پیستنگرامانان تا خوب نشانه برند دیگه هر چی تو چنته داشتن رو کردن. روزگار بدیه خدا به داد برسه. حالا چه خاک تو سرمون کنیم نترس جما. هر بلایی که بیاد سر همه ما میاد. جناب سرحنگ نزد تیمسار. تیم بلوچا آرام و قرار ندارن. مثل اینکه زمین زیر پاشون پر از مار شده. هی از این ده به اون ده تاخت از این بیابون به اون بیابون با یک حمله برق‌آسا برای همیشه بساط یاغی و یاقیگری از خاچ بلوچستان برچیده خواهد شد مصبی بر کوه حاکم شده اثری از نیروهای نظامی نیست دادشاه به همراه گروهش از کوه پایین میان و به جمع بلوچ ها میبیندن آنچه دادشاه عمر کنه سزامون سماها با این کارتون مگر جای بخشش گذاشتی قرآن خدا گول عبدالمجید خان رو خوردیم مطای کلانی کردید آه. سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم, علیکم. هایی هستن که براتون گفتم داتشا داتشا خدا شاهد چشمم که به تو افتاد دو رو سرم خراب شد داتشا نام بلوچ لکه دار کردیم اما به تو رو زدیم که ما رو ببخشی و ما رو به خدمت بگیری خوش آمدین همدینان پس پس دو ما رو میبخشی این جوان مردی میشه خدا گم نمیشه اگر ما را قبول کنی هفت هشتاییم گفتم که کاری نکردید دستی و شانه بلوچی میزنن به کلام خدا نه به زور قهدی نه به زور از تو جدا نخواهیم شد شکر خدا همه داریم همراه یا همراه میشیم ها هرکی تونسته تفنگ بگیره دستش آمده هم پای ما با جان و دل بجنگه ما این مردم رو میشنسیم از اولم همه باها هم دامه دادشاه دادشاه ها مانده نباشی چه خبر جما خان از حبس حکومت دل شده دادشاه به فکر او که بعد از مرگ دورانی با ما سر سرسنگین شده بود این حبس چه معنی داشت از ایسا خبری نشنیدی جما نه خان در کنار استاندار و چند بلوچ دیگه پای بساط دود نشسته همین که چوف داده که سه ماه در حبس حکومت بودم اعتماد دادشاه به بهم قرستر شده <تصفيق> دیگه جای شکی براش باقی نمیبونه اما گیریم دادشاهو کشتیم اگه حکومت به قولاش وفا نکرد اون وقت بفرمایید چه می کنی ها؟ اگه همچ کلکی زد ماام براش مانع تازه ای می تراشیم صورت من با طفنگ جا میزنم به کوه این به کنار اون وقت با مردم چه کنیم؟ اگه در پناه حکومت نباشیم دیگه جایی تو این اب خاک نداریم همین منو به فکر وا داشته؟ شکاری منطقه رو زیر نظر داره. کلبه ها و همه جا دادشاه و یارانش برای مذاکره با ایدوخان و سرهنگ بریپور و بقیه همراهانش به هم نزدیک میشه ایسام میبینی؟ شنبه در بین نفرات اونها نگاه نه ایدو خان به محافظش اشاره میکنه و هر دو گروه به هم نزدیک میشه دادشاه مستقیم در چشمان سرهنگ میگاه چجوری ایدو خان؟ سلامت سرهنگ هم. ایسا ایسا رو آوردید که حالا با نماینده قشون گپ بزن بعد رهاش میکنه. دادشاه عصبی میشه قول داده بودی که ای دو خان دروغ برای مرد ایبه رو قول هستیم مذاکره که کردیم آزادش میکنه. قای ای دو خان سرت برود قولت نرود سرهنگ چه دامی مهیا کردی خب بگو ایدو خن. همه به هم نگاه میکنن پاسخی ندارم تا اینکه که ایدو خان دوستوک اینقدر کل نکن تمام برادرانت خونشون خونشونو در این راه ریختن هنوز وقت مانده سر کوه رو ول کن ول کن و برو جایی که آب خوش از گلوت بره پایی من هم اما نامه برات آوردم هم پول ول کن دیگه چی میخوای؟ پس برای همین ما را کشندی اینجا؟ ها؟ تا اگر بلوچی مسئله بلوچا یادت باشه مرد برای نام میمیرد نامرد مرد برای نان ما فکر میکردیم که حکومت به عقل رسیده دست کم اجنبی ها را از این سرزمین بیرون میکند بقلن میخواستی حرمت اون کلام خدا را نگهداری ایدوخان در کیف پر از پول را بازید سرهنگ روگان ماست به جای ایسا مند دادشاه به سرهنگ نزدیک میشه و بازوی سرهنگو میدید سرهنگو با فرمان قادری که همون نزدیکیه همه افراد قشون توفنگاشون رو مسلح میکنن دادشاه و شنبه لحظه میستن تعداد نظامی ها از تعداد دسته دادشاه خیلی بیشتره و همه مسلح و آمده ایدوخان دادشاه رو از پشت میزنه. ای کلام خدا بگیرت ایدوخان. و باز هم گلوله دیگر این بار در سینه دادشاه نظامی ها همه دار و دست دادشاه رو می زنه. دادشاه هنوز سر پای استاده توفنگش رو سمت ایدوخان ایدوخان می گیره ایدو فرار میکنه. و دادشاه با تکتیر ایدوخان رو به درک میفرسته دادشاه به سرهنگ نگاه میکنه قادری از پشت تیری به دادشاه میزنه و از کمین بیرون میاد همه به زمین افتادند. همراهان ایدوخان هم کشته شدند. و دادشاه خونآلود بر تخت سنگی تفنگ بر دست نشسته بستند تا دادشان را از شاه بگیرد صدای دادشاه افسانه شد و فریادش در یاد ها ماند همچنان که بیداد شاه دادشاه یک دست بود و یک صدا یک دست بی‌صداست مردم ما داد خود را از شاه وقتی گرفتند که همه دست‌ها را به هم دادند و همه یک صدا شدند. شهرام عزیز فیلمی رو که شنیدید فیلم دادشاه بود. محصول سال 1362 کشورمون که خب مدت زمان زیادی از اون می‌گذره اما می‌تونه مسئله‌ای باشه که هر لحظه ما با اون ده خیلی ممنونم از شما که به رادیوفیلم فیلم این هفته هم گوش کردید تهیه کننده و سردبیر این برنامه فرشاد آزرنیا بود صدا بردار جناب آقای علی حاجی نوروزی نویسنده و گوینده این برنامه که در خدمت شما بودم بحرام سردنه شد امیدوارم استفاده کافی رو از این رادیوفیلم فیلم برده باشیم تا رادیوفیلم فیلم دیگر خدا نگر که بیان